صدای های های گیریه بیبی خاور را میشنوم. کتاب حبوط دکتر شریعتی را زمین میگذارم و بلند میشوم. یا الله. منتظر جواب نمی مانم و در را باز میکنم. مشرحین پدر در مرا که میبیند از جا بلند می شود. چشمهایش قرمز است. دست روی شانهش میگذارم و کنارش می نشینم. بیبی بی خاور با بال چارقدش قدش دماغش را پاک میکند. بانو سرش را به زانوهایش تکیه داده و چشمهایش اشکالود است. داوود کنار در نشسته. نوک دماغش قرمز است. خدا بد نده بیبی بی خاور، طوری شده؟ بد نبینی آقای مدیر. بد نبینی. بد بخش شدیم. آی ازی روزگار قدار. قد گلبانو گوشه ی را رو رو روی چشمهایش گرفته و شانههایش تکان می‌خورد. داوود هم فین فین می کند. چی شده؟ مشرحیم شما یه چیزی بگین مشرحیم با دستمال چرکی گوشه یه چشمایش رو پاک می کند حیدر آقای مدیر حیدر خدای نکرده طوری شده؟ اسیر شده آقای مدیر با شنیدن کلمه اسیر صدای گریه بیبی خاور و بانو بلندتر می شود. بانو چنان از ته دل گریه می که انگار عزیزترین کسش مرده است اینکه گریه وزاری نداره خب اسیر شده این جنگ که همیشگی نیست یک سال یا دو سال دیگه تموم میشه اونم به سلامتی برمیگرده سر خونه و زندگیش مشرحیم میگوید ای آقا چه فرمایشاتی میفرمانی میگن ای از خدا بی بیخبرا اسیر نگه نمیدارند همه را سربنیس میکنن نمیدانم چرا با هر کلام مشرحیم صدای هقق بانو و های های بیبی بی خاور بلندتر می شود بانو بلند می شود و از اتاق بیرون می رود احساس خوبی دارم فکر می کنم این بهترین خبری هست که در این ایام شنیدم اما از دست گل بانو عصبانی هستم نمیدانم چرا باید برای آن سرخر ناراحت باشد می گویم کی گفته اسیر را می کشند جنگ قانون داره همینجور علکی نیست اسیرها زیر نظر سازمان صلیب سرخ جهانی هستند کسی جت نمی کند به آنها آسیبی برساند. مشریم میگوید: چه میدونم آقا خدا خودش رحم کنه. بیبی بی خاور چپوقش را چاق میکند و به طرف مشرحیم می گیرد. دلم پیش بانوست نمیدانم کجا رفته و چرا رفته؟ بیبی بی خاور میگوید: حالا آمو مطمئن هستین؟ شاید مشررحیم میگوید؟ نامه از همین جایی که آقای مدیر میفرمایند اومده از صلیب سرخ مشرحیم سرفه می کندند نیست چپق را به طرف بیبی بی خاور میگیرد داوود بلند می شود و میرود بیرون. میگویم مشرحیم چند وقت تاثیر شده. ایطوری که معلومه چند روز بعد از مرخصیش ای اتفاق میافته. مدتی بود ازش بی خبر بودیم دلمون هزار را رفت. اغربتم خبرش از عراق اومد میگویم اون که کردستان بود چطور سر از عراق در والا چه میدونم آقای مدیر ایطوری که این نظامی‌ها میگفتن میگن هر کی را تو کردستان اسیر میکنن میفرستنش عراق بعضیاشونم میگفتن تو جبهه کردستان اسیر خود عراقیا شده خدا خداله میگویم، به هر حال خدا رو شکر کنین بلایی سرش نیومده اونجام جاش امنه، جنگ تموم بشه برمیگرده میگرده. میگوید میگوید خدا از زبونتون بشنفه آقا. مشراهیم بلند می شود. بیبی خاور میگوید حالا کجا آمو؟ میموندی یه چایی چیزی؟ مشراهیم میگوید نه برم آمو، بچه ها تنها هستن. بلند می شود. با مشراهیم دست می دهم، کف دستش زبر است. مشرحیم که میرود داود میآید داخل اتاق از داود میپرسم بانو کجاست؟ سر چهار نشسته گریه میکنه؟ بیبی بی خاور سرش را تکان میدهد و دود را از بینیش بیرون میدهد از اتاق بیرون میآیم بانو روی چهارپایه نشسته صدای فینفینش را می شندم. چیه؟ چه خبر شده؟ چیزی نمیگوید جلوش می نشینم. بانو تو برای اون لات سرش رو بلند می کند در تاریکی شب حالت چشمایش را نمیبینم تو هیچ چی نمی فهمی. تو نمیفهمی اون کی بود چطور بزرگ شد چه بدبختی هایی کشید چه ربطی داره خیلی ربط داره تو هیچ چی نمی فهمی و برخلاف تصورم اصلا هم حس انسان دوستی نداری یعنی چه حتما می خواهی واسه اون لات چاقوکش آبگوره بگیرم اگه یک بار دیگه به اون بگی لات راه میافتد جلوش میستم صدای داوود را میشنوم نه, نه میگه بریم تو اتاق همسایه ها صداتون رو میشنونن از روزی که از تهران برگشتم بیبی بی خاور خودش زمینه را برای تنهایی من و بانو فراهم میکند بانو میگوید مادرم دلش میخواهد ماجرای نسا اینجا هم تکرار شود بریم تو اتاق با هم حرف بزنیم من با تو حرفی ندارم دستش را میگیرم و میکشم. دلم نمیخواد راجب بعضی مسائل حرف بزنم، نمیفهمی؟ دستم را روی دهانش میگذارم و به زور میبرمش. داوود نگاهمان میکند. وقتی دستم را از روی دهانش برمیدارم، نفس نفس میزند. خیلی احساساتی شدی. ببین سعید، ممکن هیدر برای تو یه لات چاقو کش باشه، ولی برای من اصلا اینطور نیست. حتما خانوم از تایی دل دوستشون دارن سیگارم را برمیدارم و روشن می کنم دستایم معلومه که دوسش دارم دهن تو ببن و گنه با مشت می‌بندمش. پس دست بزنم داری معلومه که دارم فکر کردی فقط شما داتی ها بلدین چوب و چماغ روی هم بکشین با صورت برف روخته به طرف در می رود. جلوش می و چفت در را می اندازم. ببین آقای شهری ناز پرورده تو نمیتونی بفهمی بخشی از وجود و گذشته ای من هیدر بوده و هست تو نمیتونی بفهمی من و هیدر با هم بزرگ شدیم متعلق به یک طبقه هستیم و خاطرات و مشترکی داریم هیدر برای من یه بچی زردم بوی رنگ پریده است که زن باباش بهش نون خالی هم نمیده به خاطر همین گاهی اون سر صفری خودمون میبینم که با هم نون دوغ یا نون ماست میخوریم هیدر برای من است که پنج فرسخ راه تا لنگر میره تا چندتا قارچ پیدا بکنه شب بیاره خونه ما تا مادرم با اون قارچ شام بپزه و اون خوشحال باشه که سهمی داشته. هیدر برای من یه پسر بچه یه سیزده سال است که تموم روز توی باریکه ی آب رود خونه زیر سنگا دنبال ماهی میگرده تا بتونه چند تا ماهی بیاره خونه ای ما و سر یک سفره با ما بنشینه و ماهیای تیغدار تیقدار سالم قورت بده بس کن نکنه میخوای تا صبح شعر فتوحات هیدر خان رو بدی ببین آقای نوری رابطه یه من و هیدر یه رابطه یه طبیعی بود نه اون به من فخر میفروخت نه من به او پس منتظرش میمونی پس با من بازی کردی من منتظرش نبودم و نیستم ولی از هم که به وجود اومده اصلا خوشحال نیستم درسم یادت باشه من از مهربونی و عشق یه بچه پولدار شهری که تاوان گناهان پدر ارتشیش ارتشیشو با ازدواج با زنای بیوه و دخترای فقیر میپردازه بیزارم دستم بالا می رود و روی صورتش پایین میآید. دستش را رو روی صورتش میگذارد. چفت در را باز می کنم در حالتی نامتعادل بیرون می رود. راه میروم و سیگار می به دیوار مشت میکوبم. میخواهم بداند که خواب نیستم. چند بار دست راستم را که با آن به اوسیلی سیلی به دیوار میکوبم. نمیدانم میخوام دستم را تنبیه کنم یا خودم را. احساس میکنم دستم نافرمانی کرده. حق با اوست. رابطه ما طبیعی نیست. من چرا او را دوست دارم؟ اصلا او را دوست دارم؟ یا به یک دختر با استعداد و کتاب خان ترهم می کنم؟ با سیما چه تفاوتی دارد؟ از سیما قشنگتر نیست. چرا هست؟ زیباست. یک زیبایی ساده و طبیعی دارد. زیبایی سیما طبیعی نیست. چرا زدمش؟ چرا آن حرفا را زد؟ از اتاق بیرون میآیم؟ آسمان صاف و محتابی است کنار در اتاقشان میستم دلم میخواهد صدایش کنم دلم میخواهد بگویم بانو و او بگوید من گل بانو هستم و من بگویم من از اسمهای دوتکه بدم می‌آید تو برای من بانو هستی نه دلم میخواهد بیاید بیرون ببرمش اتاق خودم انقدر بزنمش که بگوید غلط کردم من اصلاً آن لات چاقوکش را دوست ندارم می روم سر چا. با سر و صدا آب به صورتم می پاشم کسی در درونم فریاد می زند بشنو لنتی بشنو بیا بیرون به خودم می گویم سعید تو آشغش شده ای و او این را نمی داند چند بار توی حیات می چرخم صرفه می کنم همه جا خاموش هست در حیات را باز می کنم روستا در خواب است. حتا ها و ها و ها هم خوابیدند. بدون اینکه بخواهم از روستا بیرون میایم و خودم را روبروی قبرستان میبینم، برمیگردم. آنقدر از قبرستان و ها و جنها شنیدم که خودم را در محاصرهشان میبینم. میدوم. نمیدانم کی جلوی در حیات میرسم. در حیات را که باز میکنم، پرهی به بانو را میبینم که به طرف اتاقشان میرود. برای یک لحظه می و نگاهم میکند. من هم میستم، نمیخواهم پیش قدم بشوم، اما ناگه ها ناپدید میشود، نمیدانم آیا واقعا او را دیدم یا خیال کردم. آب دلو را روی زمین خالی می کنم. دلو را توی چاه ها می کنم. صدای برخورد دلف با سطح آب شدید است. کماشدان مسی را و باری گماسه و ماسه سابد. دلو را بالا می کشم. روی پاهایم می‌نشینم و دلو را روی سرم خالی می کنم. اگر آشتی بود می یا حسین چه کار می کنی؟ اینجا سرد سیر تا وسط تابستونم هوا سرده. سرما میخوری؟ بلند میشوم کمرم را خم میکنم و مثل سگی که بدن خیصش را می تکاند، سرم را تکان میدهم. دستش را حایل صورتش می کند. دوباره دلو را داخل چاه رها ها می کنم. دلو به کنارهای چاه می گیرد. آب در تیره پشتم روان شده. سردم می شود. دلو را بالا می کشم. پاچه های شلوارم را بالا میزنم و آب را روی پاهایم می ریزم. ظرف ها و استکان ها جلوش ترنبار شدند. به جایی رفتن از پشت سرش از جلوش رد می شدم. پایم به استکانی می خورد و استکان به جلو پرتاب می شود و چند تکه می شود. بدون اینکه به پشت سر نگاه کنم و عکس العملش را ببینم به طرف اتاقم می روم. داود از صدای شکستن استکان بیرون می آید و با تعجب نگاه هم می کند. می گویم. چیه؟ هیچی؟ وارد اتاقم میشوم. لباسهایم را عوض میکنم. چشمم به شیشه عطر او می افتد. وقتی برایم پس آورد گفت: "پیش تو باشه. امروز به خاطر بوی ات به دفتر مدرسه احزار شدم. ناچار شدم کلی دروغ سرهم بکنم. راستش جاییم ندارم نگهش دارم. مادرم همه سورخ و سنب‌ها رو میگرده." شیشه عطر را برمیدارم. نصفش را روی لباسها، موها و ریش و گردنم خالی میکنم. بینیم تحریک می شود هر چه سعی می کنم عطسه نمی نمیشود در را باز می کنم و بیرون می آیم خم شده و تکیه های استکان را رو از روی زمین جمع می کند چنان از کنارش می گذرم که دستم به پهلویش میخورد همه ظرف ها را شسته و داخل آبکش گذاشته تکیه های استکان را از حسار به بیرون پرتاب می کند نمیدانم چرا دوباره بیرون آمدم یک آن تصمیم می گیرم پایم را زیر آبکش بزنم و همه ی زرف را پخش و پلا کنم. اما میدانم بیبی خاور هست. از عاقبت کار می ترسم. دوباره به اتاقم برمیگردم. یک هفته است با هم هیچ حرفی نزده ای. دارم دیوانه می شدم. هنوز کتاب حبوت را تمام نکردم. کتاب را بر می دراز می کشم. بوی سیرداخ همه جا پیچیده. امروز جمعه است. حتما مثل همه ی جمعه ها بی بی فکری برای نهارم می کند. کتاب را باز می کنم و می گذارم روی صورتم. از خدا می خواهم امروز سر سفره اتفاقی بیفتد که من او آشتی کنیم. نمیدانم کی خوابم می برد. با تقیهی که به در می خورد از خواب می پرم. بیا تو. حتما داوود آمده. کتاب را از روی صورتم بر نمی دارم. چیه داوود؟ چیزی نمیگوید. کتاب را از روی صورتم برمیدارم دست بانو را می بینم که کاسه آش را داخل اتاقم میگذارد مثل فنر از جا می پرم. پام به کاسه آش می گیرد و کاسه برمیگردد دست او را بین زمین و آسمان می گیرم. از پشت در سعی می کند دستش را از دستم رها کند. او را میکشم توی اتاق کف پاهایم آشی شده وقتی وسط اتاق می رسم او هم به پاهایش نگاه می کند. پاهای او هماشی شده میخندی در تمام مدتی که برایش داستان کتا هم را میخوانم با موهایش ور میرود سرش پایین است و انگشت اشارش دور رشته از موهایش میچرخد صورتش زیر خرمن موهایش پنهان است چطور بود؟ آلی؟ خرم میکنی؟ من بچه تهرونم اگه خرنیسی اینجا چه میکنی؟ بسته سیگارم را برمیدارم و به طرفش برت می کنم. یک نخ سیگار از موهایش آویزان می شود. سیگار را از موهایش جدا می کند و گوشه لبش میگذارد. کبریت را برایش م می کنم. کبریت می کشد و سیگار را روشن می کند. صدای جز سوختن موهایش را می شنبم. سیگار را از گوشه لبهایش می و از جا می پرد. بوی موی سوخته در اتاق میپیچد. بلند می شدم. به کبریت خاموش فوت می کنم و موهایش را کف دست هایم می مادم. دیوانه. موهایش را جمع می کنم. ببافم؟ نه. یک بار موهایش رو دوم از بافتم. اگه آتش می گرفتم چی؟ اون وقت من بیوه می شدم. تو یه سوژه خوب داستانی پیدا میکردی زن در آتش. بافه‌ی موهایش را از دستم میگیرد و آنها را در پیراهنش فرو میکند. اگه یه دختر تهرونی این گیسا رو داشت، کمندشون می‌کرد و به شکار پسرها می‌رفت. اون وقت تو منم با همین یه گوره شکار کردم. با انگشت به سینه هم می می‌زند. داستان رودابه و زال رو شنیدی؟ مطمئنا اگه من رودابه باشم تو زال نیستی. مگه اینکه موات سفید کنی. می‌نشینم. ببین منو خر نکن. تو باید یک عمر وظیفه منتقد رو برای من بازی کنی. پس از همین اول برو تو نقشد. بلند می شود. به طرف دیگر اتاق می رود و داستان را رو از روی زمین بر باید خودم یه بار دیگه بخونمش. در تنهایی و سکوت. ولی همین الان بگم که مهمترین و بزرگترین گام رو برداشتی. تو شروع کردی. نوشتی. این خیلی مهمه. اگه تشویقایی تو نبود که این ناقص و خلقه هرگز به دنیا نمی اومد می احساس می کنم از داستان زیاد خوشش نیامده سکوتش آزارم می دهد. میل شدیدی به شنیدن درباره ی یه دارم فکر می کنم تصمیمم برای نویسنده شدن با حرفهای او دوام می یه چیزی بگو لاقل بگو خوشت اومد یا نه نه تنها خوشم اومد که همین الان شاید بودم شاه اعتماد به نفس داشته باش مرد جدی میگم از کجاش خوشت اومد جزئیاتو بذار وقتی دوباره خوندمش سیگارم را برمیدارم کسی با سنگ به در میکوبد از روزی که از تهران برگشتم بیبی خاور کلون پشت در را میاندازد صدای خاموش شدن موتور ماشین را می شنوم. گچ را پای تخت سیاه میاندازم. از کلاس بیرون می آیم. آقای سوپی هم جلو در کلاسش ایستاده. دستهایش هایش گچیند. از حرکات چهرهش میفهمم فهمم که او هم سؤال من را در ذهن دارد. چه خبر شده؟ چهار مرد از چهار در پیکان توسی رنگ بیرون میآیند. آیند. هیچ کدامشان آشنا نیستند. دو نفر از آنها به ماشین تکیه می دهند و با هم حرف می زنند. دو نفر دیگر به سمت کلاس ها می آیند. لبهای آقای سوپی سفید شدند. یک لحظه فکر می کنم دست های گچیش را رو روی لبهایش گشیده. نمیدانم در راه رفتن آن دو چه می بینم که احساس ترس می کنم. به استقبال آنها می رویم. سوپی زیر لب می گوید آموزش و پرورشی نیستند، مطمئنم. سلام علیکم، با هر دو نفر دست می دهیم و خوشوبش می کنیم. آقای صبحی، لطفا یک لحظه تشریفی آورید؟ صبحی نگاه هم می کند. کنارهای بینی و گونه هایش زرد شده است. همانجا که هستم میستم. پچ پچ گنگی را از پشت سر می شنوهم. دانش آموزان هر دو کلاس جلو در کلاس ها جمع شدند و از سر و کول هم بالا می روند. سوپی میان دو مرد راه می رود. سرش میان دو مرد در آمد و شده است. نگران هستم. او مسئول مدرسه است. حتما درباره من از او سؤال می کنند. در جریان مسئله نسا چند بار با آموزش و پرورش گوران احضار شدم. نمیدانم از جریان من و بانو با خبر شدند یا بسته های پستی علی کار دستم داده است. دلم می به چیزی تکیه بدهم. حس می کنم در مرکز یک گردباد قرار گرفتم. تعدالم به هم می خورد. فکر می کنم در حال سقوط هستم. برمی گردم. دانش آموزان به سرعت از جلوی در ناپدید می شوند. کف دست هایم عرق کردند. دستم را به چارچوبه در کلاس می گیرم و پشت به دانش آموزان و رو به حیات می ایستم. مرد های قریبه و صبحی در انتهای حیات مدرسه ایستادند و صحبت می کنند. کاشان نشریه ها و اعلامیه ها را نابود کرده بودم. چرا آنها را نگه داشتم؟ خوب شد به علی نوشتم دیگر برایم از این بسته های مسئله دار نفرستد. حس کرده بودم و آخر باز شده. چرا علی فکر می کند با خواندن آن نشریات در جریان امور قرار می گیرم؟ این امور چه اهمیتی دارند؟ چرا نمیداند آنچه برای من مهم است ازدواج با بانو و نویسنده شدن است؟ یکی از مردها به سویم می آید. صبحی کنار ماشین ایستاده و با مردها صحبت میکند؟ نکند مسئله بانو را هم مثل مسئله نسا بزرگ کنند و به اتهام رابطه نامش رو نه ما هیچ رابطه با هم نداشتیم. نکنند خطری متوجه بانو بشود. نکنند از مدرسه اخراجش کنند آقای نوری ممکنه امروز هر دو کلاس را اداره کنین آقای صبحی با ما به گوران می آیند. مشکلی پیش اومده؟ نه خیر. صبحی عقب پیکان می نشیند. ماشین دور می زند و دور می شود. دهانم خشک شده. احساس می کنم زبانم به کامم چسبیده. دانش آموزان کلاس صبحی هنوز جلو در ایستادند. به طرف بشکه ای آب می روم، حال خودم را نمی فهمم. سر در گمم. شیر بشکه را باز می کنم و دستم را کاسه می کنم و زیر آن می گیرم. آب مانده و بدنزه است. به طرف کلاس صبحی می روم.